اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذیب بالدین به نام خدابند بخشنده بخشایشگر آیا کسی که روز جزا را پیوسته انکار می کند دیدی؟ فذالك الذي يدعو اليتيم اوهام كفيست كه یتیم را با خشونت میراند ولا یحث علی طعام المسکین و دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمی کند سوایل للمصلین پس وای بر نماز گزارانی که الذین هم عن صلاتهم در نماز خود سهلنگاری می کنند هم همان کسانی که ریا می کنند و, و دیگران را از وسایل ضروری زندگی من می نمایند